الله من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الله على و جميع ما داشتیم رو که در حد وارد شده بررسی میکردیم در اصنا حالا باید آخر بحث باشه حالا از ما در اصنا استدلالات مرموم استاد آی خویی رو در اینجا نقل بکنیم چون ایشون در این مسئله متعرض شدن و یک مقداری از بحث مونده که من بر اینشالله عرض می کنم و در این حالی که کلامی ایشون شرح می به اصطلاح مسئله چیز رو هم اینشالله متعرض می شیم. باز بحث روایات رو اینشالله تعالی متعرض خواهیم شد من هم مستاد در این کتاب مبانی تکمیل منه هاش ما نجد که بودیمشون معروف بود که خودشون نوشتن آره اون تو ما که هم مطنن و هم شرح هم به قلم خودشونه. لیکن ها شنیدم که یکی از شاگرده ایشون نوشتن بمیتونم علایه حاله ایشان به عنوان تکمله منحاج و صالحین محوم آی حکیم چون ایشان منحاج آی حکیم با... چون منحاج و به اصلاح ابداع آی حکیمه قبل از ایشان نبود کتاب منحاج و صالحین و انصافا محوم محصولا چاپای بعدی این چاپای آخرش خیلی با منحاج آی حکیم فرد در شد و هر سا در اسلوب و تعبیراتش خیلی انصافا قدیتر از منهاج با اینکه ایشون اصلا ایرانی بودن اهل خوی بودن اما بلا تا ادبی و عربی هم از خود منهاج و حکیم اینکه عرب بودن به من خیلی بهتر خیلی متن خوبی اون وقت بعد ایشان منهاجی تکملهی رو مسئله قضا و شاداد و دیات اینها رو به منهاج اضافه کردن، بعد خودشون اون تکمیل رو شرط دادن به اسم مبانی تکمیلت منه که در زمان خود ایشان چاپ شد من میگم نجم تودین که شنیده بودم خود ایشان به علم خودشون نوشتن در حال دو جل در همون زمان خود ایشان چاپ شد که به مسائل حدود و دیات و قضا و شهادات و اینها رو داره و خوبم هستون دیگه آخرین تقریبا آرا ایشانه فقط در این شرحشون اون جاهایی که توصیقات کامل زیاراته بعد برگشتن ویلا دیگه مبانیشون و بعد یکی در این کتاب هنوز اون وقتی بودن که به اسطلاح توصیقات کامل زیارات قبلیان توصیق رو میدونسن عبارت کامل قبول میکردن و میگوستن توصیق عام مست در جمعی اروان به استثنائی این قسمت بقیه کتاب و برای مبانیشان دیگه تا آخر عوض نش مردم مستاد در جده اول در بحث حدود به عنوان بحث حدود ایشون هم مثل بقیه علماء بحث حدود دارن بعدش هم تذیرات دارن خوب کرده ایشون سه رو جزء حدود نوشتن و شماره گذاری کردن اما حادیه عشر از سه یازده از حدود رو به تحتیلی که اووردن به معنای سه من حالا متن وارشینو بخونم و استدلالش رو بدم تا توضیحاتی راجع به این مطلب چون برای احادیث هم روشن میکنه ایشون فرمودن که صاحب المسلم اینطور چاپ شده صاحب المسلم یقطر و صاحب کافر لا یقطر ان شاء الله اشتباه مطبعی شده شامیشان عجل بده چه نیواری مثلا صاحب یا باد از صاحب المسلم باد باشه یا صاحب مسلمی دیگه صاحب المسلم که اتفاقی اجیر علیده اضافه صاحب خیلی وجه رو نداره اونی که در روایت صاحب المسلم یغتال و صاحب الکفار لا یغتال. علاوه ایشون میگن صاحب المسلم یغتال و صاحب الکافر لا خیلی خوب. بعد فروندن و منته این که این عبارات ایشان چه عجیبی چون در این مسئله تعیین کردن عین نصوص فتاو بدن. چه جالب ترجمه. این عبارت عین روات ما داشتیم در بحث سابق میگفتیم که مجموعه روایاتی که از امیر المؤمنی نرم شده باب سه و حد سه رو جمعای گذاشم بکردیم یکی از اونها هم همین روایته که در کتاب سکونی آمده و این روایت در کتاب ما آمده جای دیگه هم من ندیدم البته به عنوان فتوالا توضیح میدم آمده اما به عنوان روایت ان عن رسول الله ندیده در هم نو من تعلل شی ابن الصه کان اخر احد اهل اهدی دارم به وحده القتل الا ان يتوب اینها ماخن روایته که قیاس ابن کلوب، اینو متعرض شدیم قیاس ابن کلوب اصحاق ابن اسحاق ابن همار البته ایشون نوشتن معتبره تو اسحاق ابن همار اسم قیاس ابن کلوب تو خود سند برد گفتن علیه حال این روایت هم جزء است که لعمیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه نوشته شده نقل شده و این روایت تعلم شیئن این این روایته من تعلم شیئن من کان آخر عهدهی برد به و حدهو القتلو الا انیتوب این راضیه به پس ایشون در این یازدهم حکم سه رو عبردن او اول نوشتن یقتل صاحب کفار لا یقتل از نویشن من تعلم شیع امن اولا من توضیح عبارت ایشون رو بدن ایشون ظاهرن ولی علم و اندالله میخوان بین عمل سر و خود تعلم سر فرق بگذارن استقرس میکنی؟ خلاصه فرق اینه که اگر کسی سر انجام میده این یکتر بلا توبه ظاهرش اینطوره. اگر مسلمان باشیم و اما اگر تعلم سر کرد یکتر الانیتو ظاهر عبارت ایشون اینطوره چون اثر این دو روایت و حد و ساحل الغلط با اون روایتی میگه حد الغلط الا یعنی تو نمی سازه به اثر روایت ها و اخرین اصلا دو معنای فقهی است یو اگر کلیم ناحینا صغائر و سنت دو معنا هست. هست یه معنا که از ساحل یقتن این مطلقا یه معنا که از ساحل یقتن یا تو یعنی یک معنا به این است که صاحب تو و تو یک مبنام بین است که ساحل لا توبه توبه تو اگه یادتون باشه این مطلب رو سابق نهاری کنیم وقت در روایات ما منصوبا به امیر المومن هر دو آمده در روایات ما الان هر دو آمده چه کار بکنیم؟ ظاهرش این طوره خوب دقت بکنیم چون ایشون توضیح کافی ندادن ظاهرش اینه که ایشون گفتن ما به هر دو واید عمل میکنیم کیفیت عمل به حرازات یعنی اگر سر انجام داد ساهر بود این یخت است استاد اگر تعلم کرد تعلم سر این یخت هلک یستاقا مشان چه کیفیت است چه یعنی تعلم سر هم حدش قتل مگر اینکه توبه بکنه اگر توبه نکرد، تعلم سه این کیفیت جمع در کلمات استاد من چون اینو میخوام در یعنی یک مثال میخوام براتون بزنم برای اینکه این روایاتی که وارد شده ببینیم چجوری باید باش برخورد بکنه خب حالا وارد بحث استبدالی خود ایشان این در عنوان سحر المسلم فرمان مندون خلاف این جمله این فل جمله این مطلب قبول میشه چون روات تعلمم هست آخر و تدل على ذلك معتبرت و سکونی از خدمیشون رواس سکونی رو معتبر میدونن و بیشترین نقطه هم یکی وجود در تفصیح علیه ابن و کامل زیارات رو بعدم عبارت عده رو از زمین استزهار کردن به سالت. این هم دلیل ایشون قال قال رسول الله از خدم این علمای ما قدس الله هستان خیلی مغیده به مراعات حدیث نیستن از کتاب سکونی اساساً این جوله ان جعفره محمد ان عبیه ان آبایه ان علی قال یا قال رسول الله بعدش با خود کلام در اینجا در قال رسول الله این روایت رو ما سابقاً خوندیم توی این عرض روایات نخوندیم این روایت مخصوصاً با آمان رسول الله اصولاً در میان کلمات اهل سنت نیست کلا. اما یکی از مشکلات کتاب سکونی هم همینه بعضی از مطالبی که به عنوان پتواست ما در کتاب سکونی به صورت روادن رسول الله دیدیم صاحب المسلمین یقتل و صاحب الکفار لا یقتل قیل یا رسول الله ولم لا یقتل صاحب الکفار قال لان الکفر اعظامون از صحر و لعن الصحر و شرف مقرونان با همه خب حالا کسی کافرم بود کشته میشه شباید چیزی یادی انجام داد. علایه حاله این هم روایت سکونی ما در این دیروز که روایات رو شروع کردیم خوندن این روایت نخوندیم چون توی جای دیگه بود اینشالله بعدم دوباره منطقه تکیم میکنیم این الان شرح این مطلب کاملا واضح شد و اما با قطع نظر از روایت با عنوان روایت ارز کردم الان در مسادر ما در مثل کلینی ها منحصر به کتاب سکونی و با سنده اون انعندی این قال رسول الله اهل سنت هم که کلن ندارن یک روایتی در جعفریات هست که پیغمبر اکرم که سهرشون کرد ابن حسن یهودی قتل او. این هم یه چیزه عجیقریدیست از کندی روزی رواتو خوندیم این هم محصوب بهمه رو که از عجایی بینید که دو طرف خب منصوب بیشان که خب خواهی نخواهی مشکل داره این یک مطلب به لحاظ سابقه حکم این مطلب از زهری نرقل شده و در کتاب عباب الجردیه کتاب الجردیه بخاری هم آمده این حدیث این حدیث از زهری نرقل شده زهری که فقیه معروفیز محمد و مسلم استظهار کرده نه اینکه کلام رسول الله رو دقیق بکنی زهری اینطور گفته چون یک یهودی برای رسول الله سحر کرد و پیغمبر فهمیدن و این سهرندرشان اثر کرد پیغمبر او رو نکشتن دقیق کرده پس اونی که سابقه داره در دنیای اسلام به عنوان یک حتوای زهری و فتواش هم از کجا چرا گرفت حالا چرا؟ از کردیم اون سابقه ها که ما نگاه کردیم شواهد خیلی قویه کسی که رسما از زمان صحابه دستور قبل ساهر رو داد قیلت خط نظر از رواست سکونی که ما داریم به رسول الله نسبت داده شده رسمن عمره عمر دستور قبل داده و احسانیش هم صحیحه خوندیم شیخو در احل سنت صحیحه نامه اینوشی به فرماندار جوالیش که اختل کل صاحره ساهر و صاحره گفت سه مطرم زن بودم سرگرین از سر کشتیم از دختر عمر هم شده که یک مثلا بوده سر برده کنیز برده از پسر عمر هم شده ظاهرن این نقل از عمر و پسر عمر و دختر عمر چون من ارز کردم فقه مدینه خیلی است. این در فقه مدینه مالک هم قائل به همین بوده که از ساهر یختر حتی قائل به توبه هم نبوده لایستتا البته این بحث توبه چون رو بعد در خلال بحث مفصلش عرض میکنیم دو سه نکته داره این از اینجا. پس بنابراین اون چه که در مدینه بوده عبارت از این بوده است که از ساحل یختر لیکن این مطلب در کوفه خیلی روشن نبوده چون ارز کردیم شخصی به نام جندب لاقل منصور بوده در کوفه که این وقتی ساحل کشت ولید اعتراض کرد عثمان اعتراض کرد تو بودو به احسانت هم اردن عثمان جندب کسا نیکیم بوده چرا کشیم کشتن قبول نداشتیم حتی وقتی که، دختر عمرون سالفهش نشتن در حضورشون عثمان اعتراض کرد چرا؟ بعد برازرشون گرد یه نشتون خیلی دو امورمانی اعتراض مخید امورمانی دید حدش اینه. این نشون میده که در خود مدینه با عنوان رعی عمر این جا افتاده حتی رعی عثمان هم جا نیافتاده. البته بعدها مثل ابن حض رعی عثم عثمان رو بغود میکنه ابن تمایل به رأی عثمان پیدا میکنه که از صاحب لا یختن با شاید که اون وقت در کرده مدینه این بود که از صاحب یختن زهری در حقیقت با قول حوزه میکنیم یا تخصیص زهری گفت اگر صاحب یختن خب چه رسول الله میختل ابن الله رو و نظام زهری منشع شد که بره روی این فتوای کلی اهل ظلمه یا کافر معاهد لایختر این مثل رو ارز کنم به عنوان فتوا در کتاب بخاری آمده مثل در عبام جزیه لیکن فتوای است خوب نمی کنید این فتوای زهریست البته ارز کرده فتوایی که از زهری نقل شده این مقداره که زمی لایختر همین مقدار اون طرف دیگه که مسلمی نقل نشده دبت میکنه اون به نظر ما نعقل نشده چون در جمع مدینه بوده چون از عمر گفته بوده که بختر کل ساهره و ساهره دبت کردید پس یکیش جمع مدینه بوده یکیش <laughs> هم فتوای زهری بوده منشأ فتوای زهری هم این بوده که پیغم بلن یک سال چون یهودی بوده؟ پس ساهر الکفار لایخته اما اینکه این که این مطلب رو دفت رو کنیم ما به این به پیغمبر نسبت بدیم یا به امیر نسبت بدیم الان غیر از کتاب سکرونی هیچ جا نداریم بلکه اون که منشعه تعجبه از دو نقلی که به امیر می شده دو نقل یک نقلی که لایخته ساهر الکفار که تماستی یک نقلی مفصلی که ابن عرصم نمیتون یه نفله به عکسش هم شده که نه رسوله قتل این عرصم رو هر دو هم منصوب برمی به اضافه کیه یکیش رو اصلا منصوب به رسول الله کرده به قطعه طبعا خب ما مثلا الان در همین دنیا اسلام خیلی نمیشه این حدیثی رو الان در دنیا اسلام به رسول الله نصفت بدیم قبول نمی میگه که میگن اصلا شواهد موجودی داری م این یک مطلب که اصحاب ما عبود کردن که ما به نظر اون میاد عبود این رواید و همون تصوری که بوده که داشتن بعدشم پیغنگال لعنال کفره یا لعنال شرکه اعظمامنه سه منافع ندارد کفر داشته باشه چون اهل زمه بوده به اصطلاح کشته نشه اما چون سهر انجام داده کشته بشه لذا بعضی از علمای اهل سنت بی اینجور تمثل کردن گفتن حتی اگر اهل زلم هم باشی یغتن. چرا؟ چون باید اهل زلم مقید بشن که خلاف نظام اسلامی انجام ندار و سه خلاف نظام پس اگر سهر کرد انتقضت زلم از انتقضت زلم خارج میشه این اگر آمد سهر کرد از زلم خارج میشه این مطلبی که اینجا پرمودن این خیلی مطلب اکیبیست که از کفر ارزم ولی انه سهر و شرک مغرونان حالا ولی انه سهر در یک نسخه طیران داره تیران مغرونان. این هم واضح نیست که یعنی همیچه از سهر و شرک مغرونان بله یک روایت اسمال ابو حریبه که این روایت در متون ما هم آمده و روشن هم نیست اجتنبو از سبع الموبغات هر چیزی که حلات میکنه شرک و سهر در اونجا آمده از سب علمون بقاد در غصه کبائر شرک و سهر با هم آمده از سرم این ربایت پیش ما هم وارد شده اما سنده روشنی نداره اما اصح احادیث پیش اهل و سنته تو بخاری هم هست شاید ان شرک و سهر مقرونان اشاره به اون حدیث باشه وقت استظهارش استظهارش مشکله چون حدیث هم کلام رسول اللهه یعنی پیغمبر بگه چون من سهر و شرک رو یکی میدونم بله برفازم یکی باشون یعنی تمسک رو پیغمبر برای این مطلب که ساهر و لایختن به کلامی که خودشون فهمدن اینا سبع موبقات هست مضافن به این که بناشون این که سبع موبقات کبائرم و ارتکاب کبائر موجب به نمیشه. نمیشه علایه حالا انصافا این روایتی رو که سخونی نقل کرده ان علی قال رسول الله الان ما شواهد صدق برش نداریم ظاهرا فتوایی بوده و با این وضع عجیب و غریب به صورت روایت هم بسید. این راجب این روایت و معتبرت زید ابن علی انعبیه انعبائهی قال سوئله رسول الله از هم دیروز این روایت رو خوندیم اما به نهر اجمال چون این روایت در جلد سی جامال احادیس آورده دیروز خوندیم در این جلد سی و یک نیورده در جلد سی آورده در این روایت مرحوم این دو, دو روایت رو در جامال احادیس از دو کتاب شیخ جلد شیش و ده این تحریف نقل کرده ما به ذهنمون اینجور میاد به ذهن خود من مثلا فصل در اون جلد شیش در یک, باب در یک کتاب مثلا من باب مثال احمد نوحمد نوادر بوده و از جور در جلد ده هم به مناسبت تو حدود در کتاب سفار بوده اونجا و چه یک روایت رو نمیاد از چند سند استخراج رو کنه و حسب اون کتاب و حسن مستر موجود و نیازی که اونجا داشته استخراج میکنه. ظاهرش اینطور طور بشه. در حال شیخ این روا در دو جلد تحصیب آورده در یک جلد از احمد ابن محمد ابن عیسای عشعری آورده برده انعبل جوزا و الاخر اون سند این سند زیدیه به کتاب مجموعه زید مجموعه فقی و مصند زیده ارز کردیم اون سند اولا پیش ما درست نیست حسین نوالوان توصیق واضحی نداره خود عمر ابن خالد پیش ما مشکل داره انصافه اصلا چین کتابی باشه ما لحظه سجاد مشکل کلی داره احتمالا قطعاتی از همون کتاب قضای بسان و احکام باشه این راجع به یک طریقی ایشون داره و در کتاب ارزم مستدر زیدم نیست این مفت الان نیست در این کتاب بحر و زخار از اصول و احکام نمک کامپیوتر کتاب اصول احکام هست مال زیدی ها چون به ذهن من حالا میم دیروزم گفتم دیشب بازش توی مراجعه کنم. اصلا مصادر زیدی پیش من کمان مراجعه نکنم. آقا کنبول مصادر. فکر میکنم. مثلا بعضی از نسخشات مصادر زیدی باشه. حالا برای حال الان که تو مصادر زید به بار دوم که مرحوم شیخ این رو آورده از کتاب سرفار رو آورده. بقیه سرفار یکیه. در هر دو مورد شیخ منفرده یعنی نه مقهوم کلینی نه صدوق و نه کسی دیگه از فقهای ما این روایت رو نیوم میدونم دیدن من نقل که نه. خود و این نقل کتاب خودکتاب اصول احکام داره؟ نه به اونا میگن اون وقت خیلی فلسفی‌ها گفتید باشه ظاهرا واسه سند هم مستنده بود این سند مستنده هر دو سند مستندیده چه سفار چه کتاب احمد بن محمد بن عیسی من اینو خوندم دیدم اینه اون خبر فارغش نیست ها میگم واسه اون باشه همین هم همین با کاری ندارم دنبال اون اون اهلق زنازدق قسم در مسند هست اما این ذیل نیست در مستند زیل اون یکی هست که 4 تا از جنازه عده از رو با آتش سوزون این در زیل در مستند هست در مستند هست این ذیلش نیست بله این هست. خب هم هم بازم. کتاب مثلا حدیث قد که حدیث در هر جنازه حدیث هست من کتاب کی خب اون علمشون شو علم خیلی فرق خب این درسته یعنی اون زنادقه هر تو مسندزه حد دو سال را قتل این یکی نیست مشکل اینه این یکی با این سند توی مسند زید نیست احتمال میدم شاید یه نسخه ای بوده یا این دو ما اشتباه کردن احمد اشعری و خطبار اشتباه کردن نیست الان مشکل اینه حالا غیر از این حالا خود متنزده حجت نداره دست اون تو نیست حالا مشکل کار البته مرحوم اوا خودی سند و معتبرت زید اصرردن ایشون سند رو معتبر می دن بیرون توضیحاتش ارشدن و عمدش هم حسین و علوانه که ایشون توثیق میده راجبه حسین و اوبانیه بن چون نجاشی عبار داره که مغلره که توثیق مال حسین یا بازش حسنه ایشون دادن به حسین مشکوک دادن به حسن درستش هم همونه بعدم تو کتاب کامل زیارمون چی موجود است از اون راه ایشون وارد شد این خلاصهی نظر مبارک ایشون علی کی اعتماد بره از تا اونجایی که من میدونم این روایت رو توی اصالی زیدی زیدیه اون مقدار معلومات من هم زیاد میساید کنم. پیدا نکردم بله توی کتب زیدی این هست. حد و صاحر افقا این هست. و این که زنادقه و حضر از این هم هست. راجع به زنادقه و بعدم راجع به صاحر یه توضیح هر زندان بر. این هم هست در کتاب مستند زید. این یکی نیست. و این در دو مصدر ما از تراث زیدیه نروی کرده از همون شذره زیدیه به این متن انا علی قال سئل رسول البته در اون متن لم ما سئل یک لمایم داره اینجا لما نداره لم ما رسول الله عن ساهر قال النبی معنی در اهل زیدیه اینطوره این با متن ما فرق می‌کنه قال النبی لما سئل عن ساهر اداجا جاء رجلان این متن زیدیه است که ذکرها بهروز اخوار داره اما در متن ما اینطوره انا علی القا سو الى رسول الله صلی الله علیه و علیه السلام انا صاهر فقام الى جاء رجلان عدلان فشهدا بذالک فقط حل دم او فقط حل فرحل این از این روایت در مولانا که در باب سفر حکمش خطله آره بته انصاف هن بین آن وینا الله این تأیید از جا ارادیلان عدلان تا بذاله خیلی به اول دکتری اشته تاب رفته که از آیات و وعیدشون رو عدل می‌کنم تأیید ارادیلان عدلان این وسیم رو که امین الله وجود و فلحل و شو از ارادیلان عدلان یا شهادان عل نامار عیات این به نظر من که خیلی متن های جبری داره این یک مطلب مطلب دوم این که خب چرا رجلان عدلان ذکر شده؟ چون شعات رجلان عدلان طریقی ها داری خیلی طریق که دیگه کسی در موضوعات خارجی میگن احتمال تصویب نمیدن موضوعات خارجی اینطوره که اگر شاهد گفت این واقع بشه واقع که با در با موضوعات خارجی چرا فرمودن ادار شهدن از جلان عدلان میفرنن حد و سوار را و این حد و اوشن نیست برای ما که چرا در این جا عنوان را توی آمده؟ احتمالاتی هست از جمله احتمالات از جمله احتمالات نقل شده که اگر در یک نفر زنبیغی دو نفر عدل بگن این زنبیغه ولیکن تمام اهل شهر یا هزار نفر بگن آه زنبیغ نیست این مسلمانه ما میدونیمشون زنبیغ نوشتن که اون شهادت ها قبول نمیشه حکم به کفرش و به میشه. لأن زندگی امرون خفیون احتمال داره اینم اصل به اون باشه احتمال داره این روایات در باب زندگی و همچنین جدیتیه کاملا آهادیه اگر دیو جدیتی آزادن هوس نیفته کاشی آزاد میخوندم بلند نتیجه گرفته اند اما یه احتمال داره چون این مطلب سؤال و سوال کردن در باب زندگی وقت در تعلیلش امام فرم دلأن زندگی امرون خفیون ممکنه تماما اهلشتر با این نماز بود خونه و خوب یه نیست، اما دو نفر بگن اما ما در پنهانی با این بودیم این زنبیقه دقیقه پردیم این که اداد جای رجلان ادلان فشه ادابه داره این نخی داره بده باید بگه از صحر حد دو هر دیگه چون رجل این از این شهاده رجلین از این طریق صرفه ایجاد مسلحری ای که نمیکنه. این باید نکته ای باشه دقت بکنیم که میگه ادار جا رجالان عدلان تشهده یه احتمالی که مرد میگن این باشه که مردم میگن نه آقایین آدم خوبیه ما میشنسیم دون افر میگن نه آمان پنهانی پیشیشون بودیم ایشون ساره ده. پس این شهادت رجالین عدلین ای به خاطر این که ممکن است در خفیه دقیق کردیم این یک مثله ممکنم هست ولی علم ما مواردی داریم در که که اگر خود طرف اعتراف بکنه اعترافش قبول نمیشه اما اگر بینه آمد قبول میشه این یه ای اگر خودش اعتراف بکنه به یک کار وارد مواردی نشه خودش قبول نمیشه اما اگر بیانه آمد قبول میشه. شاید اشاره به این باشه اشاره به این باشه که در اینجا بیانه قبول میشه مطلقا به هر حال ظاهرش اینه که اگر سهر به راه شرعی ثابت شد حل دمو. این راجع به این دو تا روایت از کردیم در پیش ما خود مصند زید اشکال داره کلن اشکال داره این که اشکال کلیه مسند زیده این سند اشکال داره خود این سندی که الان ذکر شده اصلا زید داره که کتابی بوده محل اشکاله این ظاهرا قطعاتی از همون کتاب احکام و سنن باشه چین کتابی محل اشکاله به طور کلی پیش ما محل اشکاله ولو امر ابن خالد رو در کتاب کشی توصیح کرد توصیق ایشان روشن نیست نظر ما شواهد بر این مطلب روشن نیست و خود حسین اولوان روشن نیست و از حال اشکالات کلی داره مضافند اینکه که این رواید اصلا در نسخه مستنزه هم باز اشکال داره به هر حال این ما بحثیم سر منصوب به امیر المؤمنی. یکی از چیزهایی که منصوب است به امیر اینه که رسول الله فرمون در مسادر سومی اصلا اصلاً چین چیز رو نداریم که اداشه شهر در رسولان و عدلان ارز کردیم اصولاً از رسول الله در حد سه به معنی قتل چیزی نقل نشده قدیمترین نقدی رو که ما داریم از رسول الله که نقل شده یکی همون روادی بود که دیروز خوندیم حد و صاحر ضربتون به سید که اونم گفتن سرده چراب قابل اعتماد نیست و از عمر این مطالب نقل نشده بعد استاد فرزنان و تا اید و روای زید شهان این تعییدش هم بخوادی که رواد سرده ضعیفه ایشون رواد زید شهان رو مواقعی داردن از کردیم به عکس تصابر اونچه که ما الان در با وحد صاحر داریم کوب دفت کنیم غیرم اون چیزهایی که منصوبه به همی رو اونی که از خود اعمه داریم فقط همین یه روایته به عکس تصابر ایشان اونی که از اعمه داریم فقط هم یه روایته هم صده زعیبه و کافی آورده بعد ها هم در عبواب و زیادات آورده نمیدون فتحه او برده هم پشت پوشتان هم روحات آورده نفهم اون چی کرده بعد روایت همین از صاحب و را و به سیف ایشون برانون معایید نهارو کردن پس فرانون شیشون ضربتن به سیف یعنی قتل این راجبه دوتا روایت و استدلال ایشون در ذیل همه و من تعلمشه امی نصر ایشون می کنون الذي انهو قدیقا حواه من تخله سحر شغلن و هر وقتن دون مطلق من عمل و سحر ولakin نهو ینداپی او به زیله مؤثره سکونی و حواه قولو ولعن سحر و, و شرك مقرونان فين نهو یاد ان عمل سحر که شرك بی ایجاب القات حوا خدا کفر ایم باشه زنبوش نداره سوا من تخله شغلن و هر وقتن ام لم يتخیر این هم زیله کلامش و همه حکم دوم ممن تعلم شیع امی نسر ایشون فرم تدول و علازاله محتبرت و اصحاق مهمار که ما ازش تحریف به روایت قیاس ابن کلوب میکردیم چرا؟ چون گفتیم فقط قیاس این چیز از اسحاق مهمه کرده هیچ کسی از اصحاق ما از اصحاق مهمه کرده اصحاق مهمار حالا ایشون طبق قادی خودشون راویه اخیر رو بردن ای نالیه نالیه ای قدیقال این نالیا نالیسان کان یاگو، من تعلّم شیء من سر کان آخر اهدي بر بده وحد دخول قتل ایلاع نیاتو. وعديوگال، این عديوگال کلام صاحب شرايه صاحب جوار مذاکه. این نر روايه محمله تون علا ما اعداد تعلّم و آنل ملوش تا آخر کوئی در عمل میگه یک بدون توبه در تعلم یک بعد الاستتابه این وای مبارکیش این انس کردن در کتاب شرایع مرحوم محقق هلی ارده و تعلم شیع امنه سه عنوان تعلم داره ساعت و ساعت, ساعت جواهر در هر دو جا هم در بحث سه در بحث مکاسم معرمه هم تو بحث حدود اشکال میکنه که تعلم به نفسه حرام نیست این اشکال ایشون میخنمان ولکه نهو تقییدون بلا موجب این اشکال ایشی جاور میشه چون ما به محض روح میکنم و اما ما فل جواهر من امن روای زعیفتون لا جابر الله فلا یمکن المساعدتون فه این نقیاس کلوب الواقع فی سند روای سقتون ذکره و شیخ العده استضالی کنم چه خوندیم؟ اوایت عده رو خوندیم؟ اوایت رجاله رو خوندیم؟ رجال این کله استدلالی بود که مرحوم استاد تو این مساله آوردن که وضع روایات باب رو روشن بکنه اولا حالا یک مقداری به خود کتبوا ایشان تویشیت افشاه ایشان صحبت بکنید بعد روی دغری از اخرین مرحوم آقای خویی در بحث حدود اون احکامی رو آوردن که در روایت وارد شده استدلال هم. و اونجاهایی که روایت نداره تعزیز میگه لا نیاز چون داره که سائر مسلم یختر این از خودم که این یه تفسیری از حدود این خودش یک تفسیره اما شما اگر نگاه بکنید مثلا در مثل ده از کتب ما هم مثلا شربخم با اینکه روایت داره راستم زیاده شربخم رو جزه تعذیرات این استلاحیست که ایشون پیش رفته لیکن استلاح رائشتر در دنیای اسلام حدود است که در قرآن آمده دقت میکنیم اونهایی که در سنت آمده ولو بیان شده باشه اونو رو تعذیر گرفتن پس تعذیر دو معنا داره یک هر چی که در روایه ایشون آی خود این اصطلاح گرفتن نشان یازده هم حدود محدود است اون که در قرآنه اصلا شربه مسکر و شربه خن هم روزه حدود نیست چی برای سه سه که روایه به شربه هم زیاده و هم سریعه اون هم روزه حدود نیست اینی که در قده از کتب اصحاب مجرد تعذیر آزوازن نقطهش اینه پس حدود ما در له و حدان فیتفا بقیه ولو به سنت پیغمبر ثابت شده باشه مثلا شاب و نبی یختر این دیگه جزو حدود نمیدونن دقت نیم صاحب یختر حد و صاحب اصطلاح رو دقت بکنید متعارف در دنیای اسلام این رو جزو حدود نمیدونن الدیما همین هم طور همینطوره تو دنیا شام نداره پس یک بطل اینه که ایشون حد 11ام مجموعه حدودی در قرانه 5 تا 34 یا 5 تا 11ام نیست ایشون نشانل 8 از سه این روشن نیست این مطلبی که ایشون جزء حدود گرفتن این اصطلاح فنی رایج نیست بلکه اصطلاح دیگه جزء تعزیراته یعنی ولل برش حدی معین شده اگر با سنت جزء تعزیراته این اصطلاحات رو خوب دقت بکنید چون من خیلی مسررت که آشنا بشین با اون در دنیا که در دنیای اسلام هستن این شاء در این کتاب در خصوص آمده این یک مطلب میگه علاماه الله چیه یکی راه رسول ما راه ها را الله ایشون ببین توهری که بعدها در شیعه خصوص شیانه در کتب قدیم نگاه کن حد ممکن تزراز شده این یک مطلب مطلب دوم ایشون آمدن جر کردن این یک مطلب ایست خودش این مطلب اصلا از زمان صادر در دنیای اسلام مطرح شده ادهی سحر رو منشاء اثر گرفتن ادهی تعلم و رو و صاحب شرایط صاحب شرایط تعلم و رو بودن سرش هم این بوده چون ادهی تمسک میکردن در کفر بودن سهر به آیه مبارکه چون در قرآن داره فَيَتَعَلَّمُونَ ما این یتعلمون تعلمون و ما یا علمان منه هدن حتی غولالداتک پر انما نهن و فتنه فَيَتَعَلَّمُونَ منهما این توضیحات یه سابقه گذن ادهی بناشون به این شد که برای اثبات کفر ساهر به آیه مراجعه کنند و تو آیه تعلمه تو آیه تو یه تعلمونه منو. پس این نقطه تنمی داره این اینطور نیست که جمع بین روایت بکنی مثلا صاحب حداره فلیزا خوب دقت بکنیم فوقهای اسلام به طور کلی منو فوقهای شیعه میکنه. نمی کردن یک معیار در فرمت تعلم و سهره که ظاهر احبارت شرای عمله دو معیاره در حرمت عمل و صحره. نه تعلق که این جواهر الان خود بیم جواهر عقیدش اینه معیاره در باقی سهر چه خود, خود حرمتش و چه حدش خود سهره این رأی دوم باید چند شد؟ سه یه است که ادعه از علمای اهل سنت دیدن قائلن یا زیبی ها شاید زیبی ها مثلا من گایید نیکنم بیده این عدهشون و لا هر کسی مخواهد قایلش باشه و حاسبش اینه که عمل جمع بین هر دو عمل و سحر کفرون خوب دقیق کنیم عمل و سحر کفرون به خاطر آیه و تعلم و سحر پس نقطه نکته فرس یو فرس سقو من تعلم از سهر لا یو کفر لکه من عمل از سهر یو کفر از اینجا تا اینجا چند تا رعیشه هسته تا رعیدید. یکی اینکه که معیار در کفر همون خود عمل و سهره. یکی این معیار تعلوم و سهره به زهار اعباد شراحیه. یکی اینکه اصلا اینجا دوتا هم. یکیش کفره و حوامل و سهره. به نظر که شهر رو لعظه دیدن از خدوم زیدی ها. اما الان به کی نسبت دازه سوزه هم نیست. تعلم و ویوفستقومن تعلوم و سهر. و اما اگر کسی تعلیم و سهرم کرد پایه تعلیمون من همه این فسق و لیزه کفرن با یه بچ هم بچی بود که آقای خوبی قائل شدن این من در شاید علموی سنیان نایدم و اون این که عملا سهر موجه به قفل بلا توبه نگفتن ایشون بلا توبه چون توبه در بعدی آوردن اما تعلیم و موجب موجه به قفل الله توبه ما قبول توبه یعنی به عدم توبه اگه توبه نکرد الایتو پس بما اگر ما طبق همین که ایشون مشهور بین شیعه هر در حکم ای که در روایات حدش آمده باشه او رو حد بدونیم و رو در سنه مختزای این بود و مختزای عبایتهای خویی باید میفنن الهادی عشر و سانی عشر دو تا قرار میداده اتون راجی به عبایت پیشتران بحث مکنیم یعنی حاض اشر من عملل به سر ریختل از افثانی اشر منط مثر ریفتتل لایتون آدش این بود دیگه ای دقت خیلی این ذرافت های فنی رو حتی در تبری و اباب دقت بکنید. میخوام همیشه یعنی اگر آقای خویی معناشون این شد که هر اونی که در بشه رو سنت نشه این بشه ح. و این هم دو تا عنوانه یکی عنوان من عمل یکی عنوان من تعلم است سحر حکم اینه که فهم میکنه یکی یقتل مطلقانه کی یقتل لانیت او. درک حمله چی میخوان بسرم؟ مختصای قاعده باز ایشون اینطور میفهمندن الهادی عشر و ثانی عشر منعن ال و من تعلمه یقتل لانیت او این بود دیگه نه اینکه عنوان یکی بدن الهادی عشر این دو تا حد دو تا حد احتزا میکنه دو تا عنوان قرار داده بشه شمارش هم عوض بشه میشه 19ده 11ده و دواز و تا اینجا امروز ایشون بود که بعد در داه تا اینجا روشن شد که خیلی بعض طلا و اجوا مسئله درخدمات ایشان انصافا روشن نیست